بسم الله الرحمن الرحیم درس بسی اسم المفعول ما رسیدیم به پنجمین عامل برای مفعول بهی که اسم مفعول هست پس اسم المفعول و هو عامل المفعول بهی الخامس میگوی اسم مفعول پنجمین عامل مفعول بهی میباشد. سد و سی و پنج و سی و پنجم درس ما هو حکم اسم المفعول في العمل بحكم حكم اسم المفعول در عمل كردن كمي باشد ساد اسم المفعول كاسم الفاعل في العمل ميجي اسم المفعول بمانند اسم فاعل در عمل كردن فإذا كان مجردا من ال وهو بمعنى الحال أو الاستقبال رفع اسما على النيابة نحو زيد محبوس أخوه وتجوز إضافته إليه نحو زيد محبوس الأخي بعد بقى الزماني ك اسم مفعول خالي أز ألف لام بود ألف لام نداشت وبمعنى حال يا آيان دبود مرفوع میکند اسم رو به خاطر نائب فائل بودن به خاطر چی مانند زیدن محبوس اخوه که زیدل میشه مبتدا مرفوع علامه طرف ذمه محبوس خبر مرفوع علامه طرف ذمه محبوس اسم مفعوله اخو نائب فاعل مرفوع علامه طرفش واف حکم مضاف الیه و همچنین و تجوز و اضافته اله. و جایز است که ما اسم مفعولو به معمولش چکار کنیم؟ اضاف کنیم مضاف کنیم مانند زیدون محبوس الاخی که اینجا مضاف به اخ است. و اذا کانه به معنی الماضی وجبت اضافته الى معموله و زمانی که این اسم مفعول ما به معنای ماضی و گذشته باشد واجب است که مضافه به معمولش بشه مانند سافر زیدون محبوس و الاخی که اینجا به معنی گذاشته از چون سافر مازیه در ابتدای جمله اومده سفر کرد زید محبوس بود برادرش خوب که اینجا محبوس مضافه بشه هست؟ بأخه هست وإذا كان مقرونا بأل رفعه مطلقا على النيابة وزماني كه الفلام داشت مقرون بألفلام بود مطلقا مرفوعش میکنه بخاطر نائب فاعل بودن یعنی منظور از مطلقاً یعنی چی ماضی باشه چه حال چه آینده دیگه زمان درش مهم نیست زمانی که لام داشته باشه ماند سافر زیدون المحبوس و اخوه که اینجا میبینیم از اونجا که المحبوس که اسم مفعول الف لام داره خلاص معمولش رو که همون نائب هست مرفو شده چه شده؟ باله مرفوع الامترفش هم غاوست و تجوز و اضافه تو اله و همچنین جایز است که اینجا اسم مفعول ما مضاف بشه به معمولش چه بشه؟ مانند جا از ایدون المحبوس الاخی بله متوجه شدی اینو؟ خود اعراب محبوس در این جمله چه است؟ در این جمله ها یعنی در سافر زه از الاخی سافر زید المحبوس المحبوث و اخوهوز جا زه این الاخی خود محبوس اینجا نعت هست چه هست؟ به این خاطر مرفوع شده به این خاطر چی شده؟ چون تابع زید هست تابع زید مرفوع محبوس هم مرفوع اخو چه هست؟ اخو گفتیم زمانی که مضاف نباشه نائب فایله و زمانی که مضاف باشه لفزن دیگه مجروره لفزن چیه؟ مجروره فاید یشترطو فی اعمال اسم المفعول اللا يحول ان وزنه الاصلی میگه شرط هست در اعمال اسم مفعول یعنی در این که اسم مفعول عمل انجام بده در اعمالش میگه ازون وزن, وزن اصلیش تبدیل نشده باشه برمون وزن اصلیش بر وزن مفعول باشه مثلا در سلاسی مجرد فا این حوه لعنه باطل عمله اگر از اون وزن اصلی خودش تبدیل شد اون موقع عملش ها باطل است مانند مرار تو براجلین جریحین اخوهو متوجه شدی؟ خب بله اینجا دقت کن مررت تو رجل جریحن اخوهو اینجا گفته مررت تو رجل جریحن اخوهو ببین اینجا ما نمیتونیم بگیم مررت تو رجل جریحن اخوهو میگه چرا میگه به خاطر جریح درست به معنای اسم مفئوله ولی بر وزن اسم مفعول نیست مجروح نیست کلمه مجروح اسم مفعوله ورسیغه اصلیشه مجروح بر وزن مفعوله اما جریح به معناش هست ولی بر وزن اصلیش لازم میگه ما نمیتونیم اینجا اخرو نائب مفعول نائب فائل جریح بدونیم بلکه ما اینجا اخو رو مبتدای مؤخر میدونیم و جریحون رو خبر مقدم لذا ما نمیتونیم جریح رو اعراب رجل بدیم نمیتونیم جریح رو اعراب رجل بدیم پس مرار تو به رجل میشه گذار کردم به شخصی که جریحون اخو ها؟ که میشه جریحون خبر مقدم اخو مبتدای مؤخر رد شدن به مردی که برادرش زخمی است برادرش چاست زخمی است دو ان اضافه اسم المفعول تكون معنويه اذا كان بمعنى الماضي ولفضيه اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال باله میگه مضاف بودن اسم مفعول مضاف بودن اسم معنوی هست زمانی که به معنی ماضی باشد مانند سافر زید المحبوس ال... یا اخی یا جا المحبوس ال... اخی که اینجا المحبوس مضاف به اخست ولی این اضافه اضافه, اضافه معنوی هست اضافه چه هست؟ معنوی هست چون اینجا به معنای ماضیه به معنای چیه؟ ماضی هست در اضافه معنوی این نقطه رو بدون مضاف میتونه الفلام بگیره در اضافه معنوی مضاف میتونه چی بگیره؟ الفلام مانند المحبوس العخی که اینجا المحبوس چه داره؟ الفلام داره اما زمانی که مضاف ما لفظی باشه مضاف نمیتونه لام بگیره نمیتونه چی بگیره؟ مانند زیدون محبوس الاخی که در مثال زیدون محبوس الاخی محبوس مضاف هست به ولی اضافهش اضافه لفظی هست چون اونجا میگه به معنای حال یا استقبال هست به معنای چه هست؟ پس در اضافه معنوی زمانی است که زمانی که معنوی ماضی باشه باش فقط مضاف مضاف به چیه معنویه بعدش در مضافه معنوی الفلام میگیره مضاف میتونه الف اما در معنویش در لفظش نمیتونه میگیره بله س کل ما ذکر من العمل والشروط والاحکام اسم الفاعل يحكم به لسم المفعول میگه تمام آنچه که ذکر شد از عمل کردن و از اون شرط ها و احکام ها برای اسم فاعل در درس قبلی یک سری شرط و یک سری احکاماتی رو برای اسم فاعل ذکر کرد میگه تمام اونها که برای اسم فاعل ذکر شدند برای اسم مفعول وجود دارند مانند زیدون معتن اخوه ثوبن بله اگر یادت بیاد در درس قبلی در همین بحث فائل بله یه سری شرط هایی رو چکار کرد بیان کرد همون مسائل رو اینجا فقط امثلش رو میاره پس اینجا زیدون معتن اخوه ثوبان، زیدون مبتدا معتن خبر اخو نائب فائل چون مفعول اول بوده در واقع ولی الان نائب فائل قرار بفته مرفوعه ثوبان هم مفعول دوم سرجاش منسوب است سرجاش چیه و میتونیم چیکارش کنیم زید مؤت الاخیف و بنی اینجا در مثال دوم معط مضاف به اخ شد مضاف به چی شد بله در مثال بعدی بقر معلم ابوه اخاک کا فاضلا اینجا هم بکرون مبتدا معلمون خبر ابو نائب فایل اخا مفعول اول فاضلا مفعول دوم چون معلم از اسم مفعول از افعال سه مفعولیه از افعال چند مفعولیه می توانیم مضافشم بکنیم بکرون معلم الابی اخاک فاضلا که اینجا زمان مضاف کردن مضافه به مفعول اول میشه و دو مفعول دیگر سر جاشون منصوب میمونند این احکامات دیگه دیگر بیان کرد فاله که به میگه بر توست که بری رجوع کنی در بحث اسم فایل که اونجا چه احکاماتی برای اسم فایل بیان شد همون احکامات اینجا برای اسم مفعول هم سیدم میکنند